دوستوی عزیزم به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدید. خوشحالیم که در این جلسه نیز با ما هم هستید. این کلاس به آموزش کاربرد عملی کلام خدا در زندگی شما اختصاص داده شده. آیا تا به حال کسی سراغتون اومده که بگه من خبرهای خوب و بد دارم؟ کدومش رو میخواید اول بشنوید؟ بله تو کتاب رو پولوس اول به ما خبر بعد رو میده که بعدا خبر خوب رو حتی بهتر و شگفت تر میکنه ضمن مطالعه کتاب رومیان از شما دعوت میکنم که با دقت به درس امروز گوش کنید همونطور که در مطالعهمون در هر کتاب از کتاب مقدس پیش میریم سه سؤال مشخص داریم که معمولاً همیشه سعی میکنیم بهشون پاسخ بدیم سؤالات اینها هستند اون چی میگه مفهومش چیه و از همه مهمتر برای من چه مفهومی داره؟ چطور میتونم در زندگیم به کار بگیرم؟ خوشحالم که تصمیم گرفتید در مورد کتاب مقدس بی اطلاع نمونید و در این درس ها با ما همراه باشید. در این دوره بررسی کل کتاب مقدس که از کتاب پیدایش شروع کردیم امروز به رساله پولس رسول به ایمانداران روم رسیدیم. روم پایتخت کل دنیا در دوره‌ای بود که این رسول ایسای مسیح زندگی می کرده. کتاب رومیان یک شاهکار الهیاتی عهد جدید و به اعتقاد خیلی ها شاهکاری الهیاتی در کل کتاب مقدسه. پیغام رساله پولس به رومیان یک پیغام جهانیه نه پیغامی که منحصراً خطاب به مسیحیان رومی نوشته شده باشه. پیغام رومیان خطاب به تمام شاگردان ایسای مسیح در هر کجا و برای تمامی زمان هست پیغام این نامه عالی پولس رسول به رومیان پیغامیه که در یک کلمه خلاصه شده و اون کلمه پارسایی هست پارسا بودن به این معنیه که یک گناهکار مثل من و شما میتونه پارسا بشه پارسا چنان که گویی هرگز گناه نکرده باشی پیغام نامه پولس به رومیان پارسایی هست در مسئله فریسی و خراجگیر مسیح به ما میگه که اون حقیقته اما پولس در نامه به پیروان مسیح در شهر روم به طور جامع به ما میگه که چطور اون حقیقت داره و چطور خدا ما گناهکاران رو پارسا میشماره. یادتونه که بهتون یه تکلیف برای خوندن کتاب رومیان و پیدا کردن ایده یا هدف اصلی اون دادم خب در باب شانزدهم نامه پولس به رومیان معتقدم که متوجه خواهید شد که پولس یک بحث دنبالهدار ارائه ارائه میکنه. چهار باب اول در مورد عادل شمرده شدگی در ارتباط با گناهکاران با ما حرف میزنه. چهار باب دوم در مورد عادل شمرده شدگی افراد عادل شمرده شده و نحوه زندگی این افراد پارسا یا افرادی که توسط خدای قادر مطلق عادل شمرده میشن با ما صحبت میکنه. بعد بابهای 9 تا 11 این نامه به ما میگه که چطور پولس عادل شمرده شدگی رو به وسیله اسرائیل به کل دنیا ربط میده. پنج باب آخر دوازده لا شانزده کاربرد عملی پارسایی در زندگی های روزمرمون رو توضیح میده. در هشت باب اول رومیان الهیاتی ترین قسمت کلام رو در کل کتاب مقدس میبینید. چهار باب اول رومیان خبر بد رو به ما میده و چهار باب بعدی خبر خوب رو به ما میده سعی خواهم کرد چیزهایی رو که در این قسمتها گفته شده به طور خلاصه براتون باز کنم در چهار باب اول خبر بد مثل زمینه مخملی سیاهه که جواهر فروشان علماسهاشون رو روی اون به نمایش میذرن کلام خدا مکررن این کار رو انجام میده وقتی که خبر بد رو داریم ما اون پشت زمینه مخملی سیاهی رو میبینیم که علماسهای خبر خوب میتونن روش بدرخشن خبر بدی که پولس به همون میده در رابطه با اتهامات خدا بر علیه بشر گناهکاره پولس لیستی از این اتهامات رو به ما میده و بعدش پولس پاسخهای خدا رو همون طوری که بوده و همون طوری که هست به ما میده پولس به ما میگه که خدا از بشر دست میکشه به این معنی که به او اجازه میده که روش خودش رو داشته باشه خدا ما رو موجوداتی مختار خلق کرده. میتونیم داستان رو هر طوری که بخوایم تموم کنیم. میتونیم از اون زیافت عواقب بخوریم اما میتونیم اونو به روش خودمون داشته باشیم. این البته ما رو به سمت زیافتی مهیب از عواقب هدایت میکنه. در این باب اول رومیان مطالبات خداوند از نوع بشر رو ملاحظه میکنید واکنش های خداوند به بشر رو ملاحظه میکنید نتایجی رو که خدا در بشر اجازه داده ملاحظه می کنید بعد از اینکه دو باب از خبر بعد رو خوندید خبر خوب کم کم هو ویدا میشه در این خبر خوشی که پولس داره تعلیم میده ما چیزی را از شخصیت بشر می بینیم اما شخصیت بشر زمینه مخمل سیاهی هست که الماس رو بر روی اون می بینیم که نشون دهنده شخصیت خدا هستند شخصیت بشر چیه؟ تصور کنیم که شما رومیان یک و دو رو خوندید و بعدش برای یک شیفت شبانه کاری برای نیروی پلیس توی یه شهر بزرگ به بیرون میرید. به مدت یک ماه در شیفت شب کار کنید و بعد ببینید که آیا کارهایی که در اون شبها کردید با چیزهایی که در اون دو به اول رومیان خوندید مطابقت داره؟ بر طبق کتاب رومیان مطابق با استانداردهای خدا شخصیت بشر بیعدالتیه، اما شخصیت خدا برخلاف اونه. در اینجا لازم از معلم ارزشمند کتاب مقدس، دکتر دیوید استوارت بریسکو به خاطر دیدگاه هم در مورد مباحثه پولس رسول در این شاهکار عالی الهیاتی که بهش رومیان میگیم قدردانی کنم. این چهار با به اول رومیان به ما میگه که خدا عادله و از ما میخواد که عادل باشیم. در حقیقت، خدا بی ادالتی رو محکوم میکنه. این بابها به ما میگن که خدا چیه، چی میخواد و چه چیزی رو محکوم میکنه. در ضمن اون بابها این چیزها رو هم میگن. اونا به ما میگن که خدا چه چیزی رو میدونه. به ما میگن که خدا میدونه که ما نمیتونیم حتی با یک میلیون سال پارسا بودن خودمون رو نجات بدیم. خدا اینو میدونه. بنابراین این بابها به ما میگن که خدا چی کار کرده. خدا در شخص عیسی مسیح به این دنیا آمد و تنها فرم پارسایی رو که میتونه مبنای نجات ما باشه به خدای پدر عرضه کرد. خداوند میتونه ما رو عادل اعلان کنه. عادل چنان که گویی هرگز گناه نکرده بودیم. این کاریه که خدا کرده. این چهارباب اول رومیان به ما میگن که خدا از ما میخواد که چیکار کنیم. خدا از ما میخواد وقتی که خبر خوب رو به ما میده بهش باور داشته باشیم. به طور خلاصه چیزی که اون چهار باب اول کتاب رومیان به ما میگن اینه که خدا چیه؟ خدا عادله. خدا چه چیزی میخواد؟ خدا از ما میخواد که عادل باشیم. خدا چه چیزی رو محکوم میکنه؟ خدا ناراستی ما رو محکوم میکنه. خدا چه چیزی رو میدونه؟ خدا میدونه که من و شما هرگز نمیتونیم راه خودمون رو به بهش پیدا کنیم. این خیلی مهمه، یه دقیقه بهش فکر کنید اگه فکر میکنین که انجام دادن کارهای خوب میتونه نجاتتون بده از کجا میخواید بفهمید که به اندازه کافی کار خوب کردید یا نه؟ از کجا میفهمید که به اندازه کافی کارهای نیک کردید که به بهش برید؟ هر کسی که معتقده میتونه راهش رو به سمت بهشت باز کنه احتمالاً مطمئن نیست که داره به بهش میره مذاهب خیلی زیادی وجود دارن که اعمالی برای دستیابی به نجات دارند اما بدون توجه به اینکه اون مذاهب چی هستند اگه دستیابی به نجات بر پایه اعمال باشه افراد هرگز از نجاتشون مطمئن نخواهند شد. اینجا سوال ای هست که پولس در این چهار باب اول مطرح کرده. اگه انجام دادن کارهای خوب میتونست نجاتتون بده پس چرا عیسی مسیح اومد و بر صلیب در مورد عرق عیسی مسیح که به صورت قطرهای خون ریخته میشد، و به پدر دعا می کرد فکر کنید اگه ممکنه منو بر صلیب نفرست. این جام را از من دور کن. من میرم اما خواست من بلکه بر طبق اراده تو، اما اگه ممکنه منو مجبور نکن که برم. و خدای پدر به پایین به پسرش نگاه کرد و گفت: ممکن نیست باید بری. بعد از اینکه خدا پسرش رو بر صلیب میفرسته فکر کنید وقتی که به خدا میگید خوب من واقعا به اون نیاز ندارم" خدا چه احساسی پیدا میکنه. برای این که در واقع دارید میگید لازم نبود او بر سلیب بمیره. من خودم میتونم از پسش بر بیام. من تمامی ده فرمان رو در طول زندگیم رعایت کردم. تمام صورت صابام رو پرداخت کردم. به هیچکس کس صدمه نزدم. پس فکر میکنم که بدون اونم از پسش برمیام. تو نباید او رو به صلیب میفرستادی. اون حماقته. پولوس رسول در چهار باب اول رومیان به ما میگه خدا میدونه که هرگز خودتون نمیتونید نجات پیدا کنید. به این دلیل او باید به شکل عیسی مسیح وارد تاریخ بشر میشد و شما را نجات میداد. هیچ راه دیگه‌ای برای نجات شما وجود نداره. این چیزیه که خدا میدونه. این کاریه که خدا کرده. چیزی که خدا از شما میخواد انجام بدید اینه. خدا میخواد که به خبر خوش او باور داشته باشید. خدا از طریق نامه پولس به رومیان خبر خوش رو با شما در میون میذاره خدا ازتون میخواد زمانی که بهتون میگه که براتون چیکار کرده باور کنید در این هش باب اول رومیان پولس به ما میگه که خدا من و شما رو از طریق نقشه عالی پارسایی پارسا میشماره نقشه خدا برای پارسایی چندین شاخه داره رومیان بابهای یک الا هشت بیانیه جامعه در مورد نقشه خدا برای پارسایی رو نشون میده پولس به ما میگه که خدا مؤلف این طرحه پولس به ما میگه که فیض خدا منبع این نقشه است صلیب عیسی مسیح اساس و زیربنای این نقشه هست. پولس به ما میگه که قیام عیسی مسیح از مردگان تضمین این نقشه هست. پولس به ما میگه که ایمان شما اصلیه که این نقشه رو برای شما عملی میکنه نقشه عالی خدا برای پارسایی اگر بهش اعتقادی نداشته باشین براتون هیچ مفهومی نمیتونه داشته باشه. بنابراین خدا وقتی که میگه تمام این کارها رو برای شما کردم میخواد که بهش ایمان داشته باشید. ایمان اصلی هست که این پارسایی رو در زندگی شما به کار میگیره. کارهاتون شما رو پارسا نمیکنه اما کارهاتون به ایمان شما به نقشه عالی پارسایی خدا اعتبار میبخشه. کارهای شما ثابت کننده این حقیقته که ایمان شما واقعیه. بنابراین کارهای شما اثباتی از اینه که ایمان شما معتبره این بیانیه جامعی جامعیه که پولس در هشباب اول کتاب رومیان به ما میده هشباب اول توضیحات جذاب الهیاتی در مورد پارسایی هستند شاید بشه هر چیزی رو با نقل قول خارج از چهارچوب کتاب مقدس ثابت کرد اگه یه آیه از اینجا و یه آیه از اونجا بردارید در واقع کاری میکنید که کتاب مقدس هر چیزی رو که میخواید بهتون بگه به همین خاطر وقتی که کتاب مقدس رو بررسی میکنیم به افراد میگم که مبحث پیغام اصلی کل کتاب رو پیدا کنید وقتی که به کتاب رومیان نزدیک میشید مطمئن بشید که مباحثه ای رو که در باب اول آیه 17 شروع میشه و تا آیه دوم باب پنجدامه پیدا میکنه مد نظر قرار بدید اون قسمت از کتاب مقدس یک بحث دنبال دار رو ارائه میده. اون در مورد نقشه عالی و جامعه خدا که از طریقش شما رو پارسا میشماره به ما میگه. وقتی که پولس به باب پنج آیه یک میرسه، تمام چیزهایی رو که در چهار باب اول بهمون به گفته خلاصه میکنه. اون کلمه بنابرین که در آیه یک میبینید وقتی بهش میرسید باید همیشه توقف کنید. ببینید که اونجا براتون چی هست اون یه اتصال در مباحثش رو به ما معرفی میکنه. زمانی که پولس به باب پنج آیه یک میرسه میگه بنابراین چون که به ایمان عادل شمرده ایم، نزد خدا سلامتی داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح در باب چهار پولس تقریبا کل باب رو به داستان ابراهیم اختصاص میده هر دفعه که عهد جدید در مورد ایمان با ما حرف میزنه همیشه میگه ابراهیم پولوس زندگی و تجربه ای ابراهیم رو میاره پولوس میگه خدا به این مرد پیر ابراهیم چیزی گفت و این مرد اونو باور کرد خدا به پایین نگاه کرد و گفت به اون پیرمرد نگاه کنید من بهش چیزی گفتم و او باور کرد من او رو دوست دارم من میخوام او رو پارسا فرض کنم من میخوام اونو پارسا اعلام برای اینکه بهش چیزی گفتم و او منو باور کرد اونا میگن که برای تعریف خوشبینی مرد پیر هفتاد و پنج ساله ای رو در نظر بگیرید که بدون فرزند هست و ازدواج میکنه و یه خونه نزدیک مدرسه میسازه. خب ابراهیم هم نمونه ای از این خوشبینی بود. ابراهیم هفتاد و ساله بود که خدا به او گفت که قرار صاحب فرزند بشه. ابراهیم هیچ فرزندی نداشت. معنی اسمش پدر فرزندان زیاد هست. هر بار که کسی او رو به اسم صدا می کرده حتما ازش می پرسیده تو حتما فرزندان زیادی داری و ابراهیم هم همیشه باید گفته باشه نه ندارم اما راستش قراره که داشته باشم و اونا شاید می چه کسی اونو به تو گفته پیرمرد و ابراهیم شاید می خدا به من گفته و به این خاطر خدا گفته من او رو دوست دارم من بهش گفتم و او به من باور کرد همونطور که در این چهار باب میبینید، پولس رسول از طریق الهام روح القدس به ما شیوه جالبی میده که خدا چه چیزی رو میدونه، خدا چه کاری رو انجام داده و خدا از شما میخواد که چیکار کنید. خدا میدونه که من و شما هرگز نمیتونیم خودمون رو نجات بدیم. بنابراین خدا راه نجاتی رو برای شما فراهم کرده و میخواد اونو باور کنید. درست مثل ابراهیم که باورش کرد. خدا ازتون میخواد که باورش کنید. پولوس تمامی اونها رو در باب پنج آیه یک با گفتن این خلاصه می پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. این خلاصه ای از چهاربا به اول نامه پولس رسول به رومیانه. میخوام شما را به چالش بکشم و آیا واقعاً معتقدید که ما به دو دلیل عادل شمرده شده و توسط خدا عادل اعلان شدیم؟ دلیل شماری یک برای اینه که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما بر سلیب مرد، پس خدا میتونه ما را عادل بشماره و ما را عادل اعلان کنه. دومین دلیلی که خدا ما را عادل میسازه و ما را عادل اعلان میکنه برای اینه که ما با ایمان معتقدیم که مرگ عیسی مسیح بر صلیب اساس چیزیه که خدا میتونه ما را عادل بشماره و ما را عادل اعلان کنه. این به طرز مهم و حیاتی براتون حائز اهمیته که معتقد باشید زمانی که خدا به پسرش روی صلیب نگاه کرد خدا بستر و اساسی رو فراهم کرد که بتونه ما رو عادل بسازه و ما رو عادل اعلام کنه پولس رسول مینویسه عادل شمرده شده توسط ایمان معنیش اینه که ما باید به خبر خوشی که در آیه اول باب پنجم رومیان خوندیم باور داشته باشیم آیا وقتی گفته میشه که شما با خدا در صلح هستید به این خبر خوش باور دارید شما امروز میتونید پارسا اعلام بشید درست مثل ابراهیم به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاورید و نجات خواهید یافت ما داریم کتاب رومیان رو بررسی میکنیم اما درست مثل اینه که داریم از ارتفاع ده هزار متری از روی اون پرواز میکنیم ما به هیچ وجه وارد اعماق و جزئیات این کتاب نمیشیم چون زمان این دوره به ما چنین اجازه ای نمیده در نیمه دوم از باب پنجم پولس شروع به گفتن این مسئله میکنه که چطور میتونیم فیض خدا رو دریافت کنیم تا بتونیم در این دنیا برای او بیستیم. در چهارمابه اول نامه پولس به رومیان پولس به ما میگه که چطور پارسا بشیم یا در حضور خدا پارسا اعلام بشیم. درست مثل اینکه هرگز گناه نکرده ایم. در چهارمابه دوم نامه پولس به رومیان او به ما میگه که چطور مثل شخصی که توسط خدا عادل اعلام شده یا عادل چه مرد شده زندگی کنی. آیه دو از باب پنج هم چهار باب دوم این نامه را معرفی می پولس می نویسد که به وساطت او دخول نیز یافته ایم. به وسیله ایمان در آن فیضی که در آن داریم و به امید جلال خدا فخر می نمایی. این آیه ای عالی در نامه پولس به رومیان و آیه مهم در مبحث این نامه است. و ایمان به مسیح هست که ما عادل شمرده میشیم. درست مثل اینکه هرگز گناه نکرده ایم. این روشیه که پولس این چهارباب اول رو خلاصه میکنه. اگرچه در حال معرفی چهارباب دوم، پولس مینویسه که به وساطت او دخول نیز یافتهایی، به وسیله ایمان در آن فیضی که در آن داریم و به امید جلال خدا فخر مینمایی. در روشنی روز زمانی که به بیرون دنیای واقعی میدید میخواید که برای خدا و مسیح بیستید و سقوط نکنید. آیا میتونید بیستید؟ برای ایستادن مطابق با کلام شما نیاز به فیض دارید. کلمه یونانی برای فیض کلمه ی کاریز هست. زمانی که فیض در زندگیتون کار میکنه، اون کاریزما یا کاریزماتا هست. شما نیاز به کاریزماتا دارید اگر میخواید بیستید نیاز به فیض دارید. این چیزیه که داره میگه. حالا به وسیله ایمان به مسیح ما عادل شمرده شده و با خدا در صلح قرار گرفتیم. اما با ایمان به مسیح چیزای دیگه هم داریم. فیض داریم تا برای خدا بیستیم و زندگی داشته باشیم که او رو جلال بده. این چیزیه که پولس توی چهار باب بعدی میخواد راجب اون با ما صحبت کنه. وقتی که پولوس به نیمه دوم باب پنج میرسه یه متن عالی به ما میده. پولس با یک مععزه که میتونه نامش چهار پادشاه باشه شروع به گفتن این مسئله میکنه که چطور افرادی که آدل چمرده میشن میتونن با ادالت زندگی کنند. اولین پادشاهی که پولس به همون میگه پادشاه گناه هست. پولس به ما میگه که کشفرگشایی به نام گناه پادشاه گناه وجود داره. پولس میگه که گناه وارد شده. به این معنیه که گناه وارد این جهان شده و گناه دامنگیر شده. سپس گناه حاکم شده یا غالب شده حالا به یاد داشته باشید که پولوس داره اونو همونطوری که بوده میگه پس ما هم میتونیم اونو همونطوری که هست درک کنیم گناه وارد این دنیا شد پولوس وارد بحث فلسفی که چرا گناه وارد شده نمیشه هیچکس واقعا نمیتونه به این سوال پاسخ بده گناه از کجا اومد و چرا خدا به گناه اجازه داد ما واقعا جواب اون سوال ها رو نمیدونیم ما فقط میدونیم که گناه وجود داره پولس به ما میگه که گناه وارد شده و هر زمانی که گناه وارد میشه گناه دامنگیر میشه گناه قلبه کرده گناه نیومد که با ما دوستی و همزیستی کنه گناه اومد تا قلبه کنه شکست بده و نابودمون کنه پولس به ما میگه که گناه وارد شد دامنگیر شد و حاکم شد حالا پولس به ما میگه که درست پشت سر گناه پادشاه دیگه میاد که پادشاه مرگ زمانی که پولس میگه مرگ منظورش مرگ در نتیجه گناهه پولس در رومیان 6:23 به ما میگه زیرا که مزده گناه موت است در رومیان 6:23 کلمه مرگ به معنای اینه که گناه همیشه مجموعه ای از اواقبه و عواقبش همیشه بد هستند و به سمت مرگ هدایت میکنند بنابر بنابراین هر بار که گناه وارد زندگیتون میشه وارد میشه که دامنگیر بشه و وارد میشه که حکومت کنه و میتونید روی این حساب کنید که اگر گناه وارد زندگیتون بشه و گناه تو زندگی دامنگیرتون بشه و گناه بر زندگیتون حکومت کنه عواقب گناه هم به دنبالش میان عواقب به زندگیتون وارد میشن اونها تو زندگیتون زیاد میشن و در زندگیتون حکومت میکنن برای اینکه گناه قالبه باز همون خبر بده پولوس همونطور که خبر بد رو به ما گفته خبر خوب رو هم میگه پولس به ما این خبر خوب رو میگه که پادشاه سومی هم وجود داره که وارد زندگیتون میشه و در زندگیتون زیاد میشه و حکومت میکنه که نامش ایسای مسیح است. اون دو پادشاه اول خبر بد بودن مسیح پادشاه خبر خوبه مسیح وارد این دنیا شد و زمانی که وارد این دنیا شد محدود شد مسیح پادشاه زمانی که به این دنیا وارد شد کاری رو که به خاطر به انجام رسوندنش اومده بود تمام کرد. مسیح پادشاه پیروز شد. مسیح پادشاه بر گناه روی صلیب حاکم شد. زمانی که مسیح بر روی صلیب فریاد زد تمام شد منظورش این بود که حتی یک چیز هم نیست که به خاطر نجات من و شما به انجام نرسیده باشه. مسیح پادشاه پس از سه روز بار استاخیزش از مردگان بر مرگ هم قلبه کرد بعد پولس میگه اینجا خبرهای خوب بیشتری هم هست بعد پولس میگه چهار رومین پادشاه شما هستید شما پادشاه هستید شما میتونید با ایمان وارد مسیح بشید شما میتونید با ایمان در مسیح زیاد بشید ایسای مسیح گفت من آمدم که آنها حیات داشته باشند و آن را به فراوانی داشته باشند. آیه 17 باب 5 یکی از عالی ترین آیه ها در کتاب رومیانه پولس می نویسه آنانی که افزونی فیض و بخشش ادالت را میپذیرند در حیات سلطنت خواهند کرد به وسیله یک یعنی عیسی مسیح به عبارت دیگه پیروز شدن برای شما ممکنه این امکان هست که با ایمان وارد مسیح بشید به طوری که بتونید در مسیح زیاد بشید و بعد در زندگی از طریق مسیح حکومت کنید پولس به ما خبر بد رو میگه پادشاه گناه برنده است ونس هاونر میگه شما نمیتونید با گناه هم زیستی کنید گناه شما رو خواهد کشت همزیستی با سرطان راحت تر از هم زیستی با گناهه. گناه وارد میشه تا شما رو بکشه پس سعی نکنید که با گناه هم زیستی کنید گناه برنده است و بنابراین عاقبت گناه مرگه این خبر بدیه و حالا این هم خبر خوب عیسی مسیح برنده هست. عیسی مسیح پیروز شد و پیروز هست. عیسی مسیح حاکمه و شما هم با ورود به پادشاهیش میتونید در زندگی از طریق ایسای مسیح حاکم باشید. شما میتونید برنده باشید. این پیغام قسمت دوم رومیان بابهای پنج، شش، هفت و هشت هست. همونطور که پولس وارد این موضوع میشه، در رومیان پنج اله 8 در مورد پیروزی در مسیح او واقعا با مسائل اینطور مواجه میشه. زمانی که به اواسط باب می رسید و وارد باب 8 میشید مخصوصا قسمت اول باب 8 میفهمید که پولس در مورد مبحث مربوط به برنده بودن در عیسی مسیح با ما خیلی خیلی صادقه همونطوری که پولس در نیمه دوم باب پنج گفت که چهار پادشاه یا چهار غالب وجود داره زمانی که به باب هفت و 8 میرسه به ما میگه که چهار قانون روحانی وجود داره اگه قراره که یاد بگیرید که برنده باشید یا اینکه بخواید از طریق مسیح پیروز باشید باید این چهار قانون روحانی رو یاد بگیرید. پولس به اولین قانون روحانی در اواخر باب هفت اشاره میکنه که قانون خداست. البته این یعنی کتاب مقدس. کتاب مقدس قانون خداست. حالا این قانون خدا یک معجزه عظیمه. کلام خدا چیزهای خیلی زیادی رو انجام میده. کتاب مقدس در واقع میتونه به ما عطیه ایمان رو بده. کلام خدا در حقیقت بذر فساد نپذیدی هست که زندگی روحانی ما رو در ما به وجود میاره. کلام خدا عامل تولد دوباره ماست. قانون خدا یه نیروی خیلی بزرگه. اما قانون خدا کارهای دیگه هم داره و یکی از اونها اینه. در باب هفت پولس به ما میگه که قانون خدا قانون دیگه رو در زندگی مناش کار میکنه. قانون گناه و مرگ که به معنای قانون گناه و عواقبشه هر دفعه که به آینه نگاه می کنید نمادی از کار خدا رو میبینید اولین کارهایی که هر روز صبح انجام میدید نگاه کردن به آینه هست اون آینه وضعیت موجود ما رو نمایش میده موهاتون مثل یک درخت از ریشه در اومده است شما آشفته به نظر میاید و خیلی مشکلات دیگه وظیفه آینه نشون دادن آشفتگی ظاهری ما هست حالا با نگاه کردن در آینه سر و سامانی به ظاهرتون میدید وظیفه آینه این هست نشون دادن عیب ها تا اینکه بتونید قبل از بیرون رفتن و مواجه شدن با عموم اصلاحش کنید اولین باب از کتاب یعقوب به ما میگه که کلام خدا یک آینه هست یکی از وظایف کلام خدا اینه که نشون بده که در چه آشفتگی هستیم کلام خدا گناهان زندگی هامون رو نشون میده در اون حالت کلام خدا شبیه یک آینه روحانیه کلام خدا مثل نوری هست که از این پنجره ها داخل میشه و کسیفی این شیشه ها رو نشون میده کلام خدا کسیفی رو در زندگی من نشون میده و اون باعث میشه که احساس کنم خیلی بدبخت هستم وظیفه آینه اینه که قبل از بیرون رفتن و ملاقات با مردم نشون بده که سر و بازتون چطوره اما آیا حاضر هستید آینه را به خاطر اینکه آشفتگی هاتون رو نشون میده کنار بذارید پس وقتی کلام خدا هم آشفتگی های درونی و روحانی شما رو نشون میده آیا به خاطر اینکه شما رو ملزم میکنه حاضرید کلام خدا رو کنار بذاری قانون سومی هم وجود داره که پولس در باب هشتم رومیان در موردش صحبت میکنه پولس به این قانون قانون روح حیات در مسیح میگه حولوس میگه که این خبر خوبیه زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا را از شریعت گناه و موت آزاد گردانید. من همیشه این سؤال از خودم میکردم که چطور یه جت بزرگ میتونه توی یه باند فرودگاه حرکت کنه و بعد ناگهان مثل یه آسانسور از جا بلند بشه. تمامی اون وزن به سادگی به هوا بلند میشه. گفته میشه که اون ممکنه به خاطر اینه که وقتی جت در باند حرکت در نقطه خاص قانون آیرودینامیک بر قانون جاذبه غلبه میکنه. زمانی که قانون آیرودینامیک به قانون جاذبه غلبه میکنه، هواپیما مثل آسانسور از زمین بلند میشه. پولوس در رومیان با هفتاره داره به ما میگه که یک قانون جاذبه روحانی وجود داره که قانون گناه و مرگ و قانون خدا اون حقیقت رو که قانون گناه و مرگ داره تو زندگیمون کار میکنه آشکار میکنه. اما خبر خوبی نه. قانون دیگه هم وجود داره که قانون روح حیات در مسیح است. این قانون شبیه یک قانون آیرودینامیک الهیه. قانون روح حیات در مسیح میتونه بر قانون گناه و مرگ قلبه کنه و قلبه شما بر گناه و عواقب گناه رو ممکن کنه. اگر این حقیقت داره، چرا خیلی از ماها زمان زیادی رو روی زمین روحانی سپری می به نظر میرسه که ما هرگز به قانون گناه و مرگ غلبه نمیکنیم یکی میگفت خیلی از مسیحیان اینطوری هستند که آماده میشن که مثل یک دونده بدون اونا خودشون رو آماده میکنند اما هرگز نمیدون یا ما مثل یک جت هستیم که همش در باند میگرده و میگرده و میگرده و هرگز به هوا بلند نمیشه چرا هرگز بر فراز قانون گناه و مرگ بلند نمیشیم؟ چرا نمیدونیم که چطور قانون آیرودینامیک روحانی رو اجرا کنیم قانون روح و حیات در مسیح که میتونه ما رو از قانون گناه و مرگ آزاد کنه در باب هشتم رومیان پولس قانون روحانی چهارم رو به ما میده که خیلی کاربردیه و پولس به اون قانون طرز فکر میگه وقتی رومیان باب هشت رو میخونید پولس اینطور میگه زیرا کسانی که بر طبق های نفس زندگی میکنند همیشه در فکر چیزهای نفسانی هستند، ولی کسانی که مطیه روح خدا هستند در فکر چیزهای روحانی می عاقبت دلبستگی به امور نفسانی، مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی، حیات و آرامش هست برای ذهنی که آماده شده. پولس بارها و بارها اون اصطلاح رو به کار می بره. طرز فکر معنیش چیه؟ اگه به رخکن یه تیم فوتبال مهم قبل از یه بازی بزرگ برید، ممکنه از این که اونجا جای خیلی خیلی ساکتیه قافل گیر بشید. به این خاطره که بهتون گفته شده که اونها دارن آماده میشن. این ورزشکاران اونجا نشستن و در حال آماده کردن ذهنهاشون برای بردن بازی هستند. ورزشکاران به اون آماده سازی ذهن می اون برای هر ورزشکاری خیلی مهمه. اون برای هر فردی در بازی زندگی هم مهمه. یه کشتی به سمت شرق میره، و کشتی دیگه به سمت غرب. هر دو با بادهایی که میوزن پیش میرن. اما تفاوت مسیر اونها مربوط به نحوه تنظیم بادبان هاست. ننی روی باد. پولوس به ما میگه که اول قانون خدا رو داریم قانون خدا قانون گناه و مرگ رو آشکار میکنه اما شما این قانون روح حیات در مسیح رو دارید که میتونه بر قانون گناه و مرگ غلبه کنه. خب پس چرا ما بر قانون گناه غلبه نمی کنیم علتش به خاطر قانون طرز فکره ذهن شما بر پایه قانون روح آماده نشده ذهن شما بر پایه چیزهای جسمانی قرار داده شده ببینید کتاب مقدس چیزهای زیادی در مورد طرز فکر داره که به ما بگه میتونید بدنی داشته باشید که با نور پر شده باشه یا بدنی که با تاریکی پر شده باشه اون بستگی به این داره که چطور چیزها رو میبینید؟ مسیح گفت چراغ بدن چشم است اگر چشم تو سالم باشد تمام وجودت روشن است اما اگر چشم تو سالم نباشد تمام وجودت در تاریکی خواهد بود پس اگر آن نوری که در توست ظلمت باشد چه ظلمت عظیمی خواهد بود؟ معنی این چیه؟ این آیه چی داره میگه؟ این آیه میگه که یکی از مهمترین این چهار قانون روحانی که پولس به ما در رومیان هفت و هشت میگه قانون طرز فکره. من شما رو به چالش میکشم. با چیزهایی که میدونید می خواهید چیکار جهت بادبان شما کجاست؟ از لحاظ روحانی ذهن شما چطور آماده شده؟ قانون طرز فکر روحانی میتونه تفاوت بین قانون روح حیات در مسیح و قانون گناه و مرگ رو در زندگیتون بنابه گفته پولس نمایان کنه. به قول مسیح، طرز فکر روحانی شما میتونه تفاوت بین یک بدن پر از نور و یا یک بدن پر از تاریکی رو نشون بده. دانش عزیز، این یه چالش ژرفه زندگی شما پر از نور یا تاریکی. خداوند، عیسی مسیح برای جستجو و نجات گمشدگان اومد. مسیح اومد که بارهای شما رو حمل کنه و به عنوان نور جهان شما رو به دنیای نور بیاره. اگر امروز اون رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خودتون بپذیرین، زندگیتون میتونه با نورش پر بشه و بعد شما خواهید توانست برای دیگران بدرخشین و اونها رو هم به داخل نور مسیح بیارید. ما امیدواریم که این درس ها شما رو هدایت و در ایمانتون تشویق کنه تا بحنامه بعدی در جلسه آینده باشد که نور کامل خدا بر شما بتابه.